داستان جوزپه چوفولو جوونی بود به اسم جوزپه که وقتی بیل نمیزد برای خودش نیلبک میزد یه روز تو مزرعه نیلبک میزد و میرخصید تا خستگی بیل زدن رو از تنش در کنه که یهو چشمش خورد به یه آدمی که کنار زمینش دراز به دراز خوابیده بود نیلوکش رو از لبش برداشت و رفت کنار اون مرد. ولی اون مرد مرده بود. پرندهها ها دورش جمع شده بودن. جوزپه پرنده ها رو از دورش فراری داد و با علف های تازه روش و پوشوند. و بعد هم برگشت همون جایی که بیلش رو انداخته بود. اما دید که بیلش سر خود شروع کرده به بیل زدن نصفی از زمین کشاورزیش. ه از اون روز شاد و شنگولترین بیلزن جهان شد. تا وقتی که خسته نبود بیل میزد. بعد نیلبک رو از جیبش در می آورد و بیل سر خود شروع می کرد به بیل زدن زمینایی کشاورزی.جزبهه برای همسر مادرش کار میکرد و اون مرد اصلا از جزبه خوشش نمیومد و میخواست یه جوری اونو از سر خودش واکنه. اولش بهش میگفت که این پسر خوب بیل میزنه. اما خیلی کم کار میکنه. بعد هم میگفت خیلی خوب بیل میزنه. ولی بعد بیل میزنه. به خاطر همین جوزه تصمیم گرفت نیلوکش رو برداره و از اونجا بره. رفت سراغ همه اربابای شهر. اما که بهش کار نمیداد. آخر سرم، یه گدا پیری رو دید و ازش خواست که یه لطفی در حقش بکنه و یه کاری بهش بده. مرد گدا هم بهش گفت که بیا با من پولایی که مردم بهمون میدن رو با هم تقسیم میکنیم. خلاصه، ژوزپه با اون پیرمرد گدا همراه شد. و با همدیگه میگفتن، یه لقمه نون بدین در راه مریم مسیح. اما همه به پیرمرد صدقه میدادن. ولی وقتی به می رسیدن بهش میگفتن آدم با این هیکل گدایی میکنه چرا نمیری دنبال کار؟ جوزپه هم بهشون جواب میداد خب کار پیدا میکنم مردمم بهش میگفتن چرا این حرفا میزنی پادشاه زمینای نکاشته زیادی داره به هر کی هم که روشون کار کنه پول خوبی میده خلاصه جوزپه به طرف زمینهای پادشاه رفت. و پیرمرد رو هم با خودش برد. زمینای پادشاه هیچ وقت هیچ کسی تا آن روش کار نکرده بود. جوزه اونا رو دیل میزد و گندم میکاشد. علفهای های حرز رو به جیم میکرد و بعد هم گندم رو درو میکرد. وقتی هم که از درو کردن خسته میشد، نیلوک میزد و برای خودش آواز میخوند. آی داس من خوشحال باش. چون که عرباب میخواد دخترش رو به من بده. شاهزاده خانوم با شنیدن صدای آواز جلوی پنجره اومد و چشمش به جوزپه افتاد. آشقش شد. اما اون شاهزاده خانوم بود و جوزپه بیلزن معمولی امکان نداشت پادشاه اجازه عروسی بهشون بده. به خاطر همین اونا تصمیم گرفتن که با هم فرار کنن. شبکه شد با قایق فرار کردن. خیلی دور شده بودن که جوزپه یه دفعه به یاد پیرمرد گدا افتاد به شاهزاده خانم گفت باید منتظر پیرمرد بشیم چون پول‌ها رو من تقسیم میکرد من نمیتونم همینجوری ولش کنم و همون موقع پیرمرد رو دیدن که روی آب داره راه میره و به طرف اونها میاد وقتی که به قایق رسید گفت قرارمون این بود که هر چی به دست آوردیم با هم نصف کنیم. من همه اون چرا که به دست می با تقسیم میکردم. حالا تو صاحب دختر پادشاه شدی و باید اونو با من تقسیم کنی. و به جوزپه یه چاقو داد تا عروس رو از وسط دو قسمت کنه. جوزپه با دستای لرزون چاقو رو گرفت و گفت تو حق داری اما علی خب مجبور بود که این کارو انجام بده. نزدیک بود که عروسو از وسط نصفش کنه که پیرمرد دستشو گرفت. صبر کن. تو آدم خیلی خوب و امینی هستی. باید بهت بگم که من همون مرد مرده‌ای مرده بودم که تو با علف تازه روش روشو پوشوندی. میتونید برید. امیدوارم که همیشه شاد و زندگی کنید. پیرمرد همون جور که روی آب راه از عروس و جزپه دور شد. قایق جوزپه هم به جزیری پر از درخت و منظره های زیبا و همچنین قصر شاهانه ای رسید که منتظر عروس و داماد بودن. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر کنین؟ جایی که پری و کوتوله ها زندگی می